وزایف روزانه چالش برانگیز یکی از دلائل پذیرفتنی بالا رفتن رضایت شغلی کاهش وظایف روزمره خست کننده است. هرچقدر که این تحول دردناک است، با سازی تجهیزات کارخانه ها بگونه ای که روبات ها بخش عمده ای از کارهای معمول را انجام دهند، جامعه را به مسیر درست ساق می دهد. در حال حاضر 37 درصد از مشاغل آمریکایی را می توان از خانه انجام داد که محیطی مناسب تر از یک دفتر کار است اما برای بهبود شرایط نباید به سراغ اهداف دست نیافتنی رفت اگر چالش خلاقانه باشد آگاهی انسان در چالش رشد میکند به طور خلاصه، این باید هدف شخصی شما باشد وگرنه پول، مسئولیت، موقعیت، قدرت و اعتبار برای جبران بسیار ناچیز هستند. اتش پیشرفت شغلی باعث می شود افراد به ارتقای شغلی رضایت دهند و خلاقیت را فراموش کنند و این یک مبادله بد است. چالش خلاقانه چیست؟ میتوان آن را به عنوان هر امکانی تعریف کرد که به شما فرصت میدهد استعدادها و توانایی خود را گسترش دهید. اینها احتمالاتی هستند که باعث میشوند احساس کنید در حال رشد و تکامل هستید. در آنچه از قبل در آن مهارت دارید بهتر میشوید یا توانایی های خود را در زمینه جدیدی گسترش میدهید که شما را حیجان زده میکند. لازم نیست یک هنرمند خلاق باشید هر جا که راه حل ها به ارزشمند باشند چالش های خلاقانه فراوان است متاسفانه جامعه در خصوص خطرات واقعی خستگی و فرسودگی شغلی چیزی به ما نمیاموزد شدن ارزش اجتماعی بالایی دارد اما پزشکی از میزان بسیار بالای سوی مصرف مواد مخدر و فرسودگی شغلی برخوردار است. انگامی که روز شما پر از بیماران مستربه است که با روشها و داروهای یکسان درمان می شبند، چالشهای خلاغانه کمی وجود دارد. اگر هر روز یک کار نو انجام دهید، هر روز از نو ساخته خواهید شد، این یک خیال نیست هر سلول در بدن ما همواره در فرایند باسازی است. آیا شما به اندازه کبد یا به اندازه یک سلول معده شایستگی از نساخته شدن را ندارید؟ این سوال بسیار ارزش پرسیدن دارد در شغل خود خوب بودن تمایل به خوب بودن در شغل خود به طور طبیعی برای همه افراد به وجود می آید. انجام یک کار خوب باعث احترام و تحصیل می شود. رفتار مردم با شما بهتر از زمانی است که شما یک کار شلخته یا بی دقیقت انجام می دهید اما به راحتی دوچار بسواس می شود. اگر با شغل خود هم ذات کنید از عمرتان کاسته خواهد شد. افرادی که تماماً درگیر کار خود هستند، دوچار سبک زندگی معمول و تکراری شده‌اند. ساعت کار طولانی، بردن کار به خانه، تلاش برای آری بودن. اینها علائم وضعیتی نگران کننده ای هستند. جاه طلبی یک فضیلت نیست. می توانید زمانی از روز را به سلامت تن و روان خود اختصاص دهید. اگر فضایی برای این گذینه ها دارید، برنامه ریزی زمانی برای انجام آنها به شما کمک می کند. تحرک و انجام حرکات کششی به مدت 5 دقیقه در هر ساعت. پیدا کردن زمان برای ارتباط شخصی با فردی که احساس نستیکی می کنید، نه از طریق پیامک یا ایمیل. وقت گذاشتن برای تنهایی و از سکوت خواد، انجام کاری شبیه بازی یا تفری اختصاص زمانی ویژه برای مراقبه یا انجام یوگا اگر روز شما حاوی این عناصر نیست یا اگر به آنها به عنوان دلخوشی گاه به گاه نگاه می کنید از زمان خود برای ارتقای تندرستی استفاده نمی کنید البته بخش زمان بندی آنقدرها هم اهمیت ندارد چه برسد به اینکه وقت خود را کاملا صرف آن کنید روابطی ارزش دارد که فراتر از هر برنامه روزانه است اما همچنان برای داشتن یک رابطه رضایت بخش باید برای عملی کردن برنامه ها زمان کافی اختصاص بدهید بنابراین وقتی به معنای خوب بودن در شغل خود فکر می کنید، به دقت توجه کنید هر روز چگونه می گذارد. اگر شما برای زمان تحت فشار هستید، هر ساعت مشغول کار هستید و با وظایف و تقاضای بیش از حدی مواجه هستید که نمی توانید بدون نگرانی به آنها رسیدگی کنید، قربانی زمان هستید. از دیدگاه هوش خلاق همیشه زمان کافی برای انجام بهترین کار برای شما وجود دارد. خود را با این حقیقت همسو کنید. در مسیری قرار خواهید گرفت که هر روزتان را به صورت کامل رضایت بخش کنید و نه فقط بخشی از روز که مشغول کار هستی. جریان هوش خلاق حضور در دارما مسیر روشنی را برای جنبه پویا آگاهی میگشاید که به آن هوش خلاق لقب داده‌اند یوگا میاموزد که آگاهی ناب ساکن نیست آگاهی با نوسان زندگی همگام می شود و از درون خود می جوشد تا به فرم فیزیکی ظهور کند یعنی جهان جریان هوش خلاق همه موجودات زندگی روی زمین را سازماندهی می کندند اما در میان همه آنها تنها انسان ها هستند که می توانند به طور آگاهانه از هوش خلاق بهره ببرند. کاری که ما برای هزاران سال انجام داده ایم. وقتی از کانال زایش بیرون آمدید، هیچ خاطره ای از زندگی خود در زهدان مادر به همراه نداشتید. هیچ خاطره ای از سفر خود از یک سلول لقاه یافته به یک نوزاد تازه متولد شده نداشتید. به همین ترتیب، چگونگی دستیابی به توانایی خلقت در حافظه انسان گم شده است. اجازه دهید باستانی ترین نمونه خلاقیت انسانها را بیان کنم. عملی خلاقانه که تمدن را ممکن نمود هر حیوانی از آتشی که از برخورد سائقه در طبیعت به وجود میاید می آگد فرار میکند؟ چرا انسان نخواستین به جای فرار کردن ایستاد و تصور کرد که آتش را می توان رام کرد کدام استحاره جادوی ترس را به نبوغ تبدیل کرد انسان شناسی هیچ پاسخی ارائه نمیدهد؟ مدتها تصور می شد که آتش باید محصول بزرگترین دستاورد تکاملی انسان خردمند یعنی مغز بزرگتر باشد. در میان همه گونه ها مغز انسان در مقایسه با اندازه بدنش بسیار بزرگتر است. سپس آثاری از خاک سر چوب در مکانهایی کشف شد که انسان نخواستین که مغزی بسیار کوچکتر از انسان خردمند داشت زندگی می کرد. در ابتدا بر اساس نقاشی های موجود در غارهای 70 هزار ساله تصور بر این بود که آتش شاید 100 هزار سال پیش تحت کنترل در باشد. ولی در کمال ناباوری باستانشناسان در مکانهای با قدمت یک میلیون سال خاکستری کشف کردند که مربوط به 800 هزار تا 970 هزار سال قبل از به وجود آمدن انسان خردمنده است. البته بستگی دارد شما کدام نظریه را بپذیرید. نظریه کشف آتش در یک میلیون سال پیش بیشتر مورد استقبال است. اما گزارش هایی از رسوبات خاکستر بسیار باستانی تر حتی تا دو میلیون سال نیز وجود دارد. اجداد انسان نمای ما برای رام کردن و استفاده از آتش، نیازی به قشر مغزی مدرن با اندازه بسیار زیاد نداشتند آنها فقط به آگاهی نیاز داشتند که برای هوش خلاق در دسترس بود این گیدگاه یوگاست که میاموزد که آگاهی از وجود خود آگاه است خود را سازماندهی می کند و خودکفاست هوش خلاق کاملا به میل خود ما را به سوی یافته جدید بعدی ساغ می دهد هر کاری که هوش خلاق قادر به انجام آن باشد که محدودیتی برای آن وجود ندارد، ما نیز قادر به انجام آن هستیم و این زنجیره همواره ادامه خواهد داشت. برقی که دنیای مدرن را نیرو میدهد نسخه بروز همان انگیزه ابتدایی برای مهار آتش است، ام که تلفن هوشمند و رایانه رومیزی شما، نسخه به روز یک مهارت ذهنی است که در اواخر عصر حجر توسعه یافته است. مهارت ذهنی شمارش باستانی ترین آثار عصر حجر سنگهایی هستند که در آنها سوراخ‌هایی به ردیف خراشیده شده‌اند که گمان می‌رود برای تجارت کالا بین قبایل ساخته شده است. را که به ردیف باشند فقط به عنوان پایهای برای اعداد معنا پیدا می کنند. هیچ عددی در طبیعت وجود ندارد. اعداد سازه است خلاقه که توسط انسان اختراع شده است پول به مننظرله تکامل شما همواره در طول زندگی خود در جریان آگاهی قرار گرفته اید. شما فکر می کنید، احساس می کنید، صحبت می کنید و انجام می دهید. هر یک از این فعالیت ها نیاز به یک ذهن آگاه دارد. زمانی که یوگا حداقل هزار سال پیش در هند به وجود آمد و احتمالاً خیلی قبل تر، پیشگویان باستانی بجاز آنچه در ذهن خودشان پدید آمده بود هیچ چیز دیگری نداشتند هیچ بخش روانشناسی، مطالعات تحقیقاتی، کتابهای درسی یا کارشناسان هرفعی وجود نداشت شکفتنگیز است که این کاشفان جهان درون اینجا به اکتشافاتی در حد و اندازه انشتین یافتند که حتی امروز روانشناسی غربی همچنان مایل ها با آن فاصله دارد یکی یافته بزرگ این بود که آگاهی خواهان تکامل است. خلاق بودن به سوی کنشکاوی جریان پیدا می کند. احساس خوشحالی ما پس از یکی یافته جدید هرچه بیشتر به این انگیزه دامن می کودکان خردسال نمی توانند شادی خود را از کشف شگفتی های جدید در دنیا پنهان کنند. علاوه بر شادی، چیزهایی که کشف می به زندگی ما ارزش و معنا می بخشند. فقط کافیست از هر کسی درباره باره تبوتها اولین عشق رمانتیکش جویا شوید خواهید دید که برای مدتی بیشتر از هر چیز دیگری شیفته آن است و روی هوا راه می روید عشق می مانند یک پرتو کور کننده از هر جایی بیرون بیاید اما بیشتر اوقات ما یک انتخاب داریم می توانیم تحول را انتخاب کنیم یا می توانیم به عقب برگردیم